أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم على اللهم صل على محمد وهديه الله صدائم تعالى تعالى اش معي اللهم اغفر لنا جميعا يا الرحمن ارحمنا برحمتك يا الرحيم از شد صحبت را چه به اندله منکرین حجیت خبر بود در میان اصحاب ما و از شد که تمسک به اجماع کردند که مرحوم سید مرتضی رحمت الله مدعی این بود که علمای شیعه به خبر واحد عمل نمی خب این فی نفسه مشکل نداشت مشکل مثلا اونجا شد که اولا این خلاف ظاهر بود چون می مده بزرگان ما مخصم مکتب به خبر واحد عمل کردن و ثانیه شاگرد ایشان مرمون شیخ خطوسی ادعای اجماع کردن که شیعه به خبر واحد عمل کردن این دو اجماع محل کلام شدی ما بین اصولین که آیا هر با سید منتظاست یا هر با شیخ ما دیروزی توضیحاتی عرض کردیم و مخصوصا اصحاب اصولی متاخر ما سعی کردن وجودی رو برای جمع بین کلام شیخ و کلام سید درد بودن یکی شمه همین بود که دیروز از دوارت محلوم اصطار تنری که در خبر واحد دو اصطلاحه اون که سید گفته خبر باخل عمل نمی کنم مراد خبر ضعیفه اونیز که پرانه نداره و اونی که شیخ گفته به خبر باخل عمل نمی در مقابل خبر متواته که مرموم استاد از نایل نعفن وجه دیگری رو هم عرض کردیم که مردم سیر منتظر مثلا مخاصه در مقابل احل سنت مطلبی رو بفهموند که مثلا اگر احل سنت می شما چرا برارت بخاری عمل نمی کنید همین الان من در این به های نوشته‌های معاصی اهل سنت همین اشکال میبینم که شیعه مثلا به اخبار بخاری و مسلم عمل نمیکنه. مثلا مضمون سری مرتضی در حیوه جاهوش این بوده که ما به خبر واحد عمل نمیکنیم. چون نمیتونه به یکی اینا با ثقه نمیزنه. موشه بدهن از که دیگه از بخاری یا عبدالنور معن یا مثلا عائشه و ما ثقه نمیبینیم. لذا ایشون برای هند این عویسه طبیعتاً و که ما خبر واحدی رو جدی نمی‌دونیم. و مراد شیخم هم که خبر واحد حجت یعنی در میان اصحاب ما اون که از راه اصحاب ما. یا مثلا گفته شده که سید منتظار ادعای انفتاح باب علم باشه و رضا و رضا اجماع رو اجماع دخولی می‌دونسته که امام داخلن از این جهت کهشون خبر واحد حجت نمی‌دونن و شیخ رضوان الله تعالی علیه صدادی بوده و لذا مثلا قائل به خود خبر نه وجود دیگری هم گفته شده آقای میتونم مراجعه کنم خب این وجود ناشی از عدم مراجعه و تعمل در کلمات خود سید مرتضا و شیخ و نوشتارهایی که الحمدلله از شیخ داریم که خیلی فرابانه یعنی ما اون مقدار که از مرحوم شیخ توسی در این مسائل نوشته و کتاب داریم قطعا از سهل هم نداریم در مرکزانه کسانی که بعد از سید مرتزا صاحب نام هستند و کتاره هاشون به ما رسیده و منکر وجوه خبر هستند مثل ابن هدریس، مثل ابن زغره مثل قطبرابندی، مثل صاحب مجموع بیان از کار قائمه هستن، ریستی هستند که متکلمین و مفسرین اصحاب ما هستند، اینها یکی یکی دوتا نیستن که حالا مثلا بیم کلامه سهر مرتزاری یک جو بکنیم کلام رو مهاره ی جلوی کنیم اینطور نیست اینا ظاهراً در اثر عدم مراجعه و تعمل و عدم به اصطلاح مطارعه یا سابقین انجام گفتیم و اما به واقع مطلب چیه و ثانیه آیا میشه توجیه برای کلام شیخ برای این که کلام ایشان با کلام سید مرتزا منافاتی نداشته باشه بیان کردیانم اما توجیه مطلب دیروز روز کردیم توضیحاتش رو اشمالا کردیم سابران هم کرا کردیم ارز کردیم با این مسئله ای که در میان اهل سنت به معنی به, به عنوان حجیت خبر واحد مطرح شد این اینطور نبود که مثلا علمای های شیعه بر مطلع نباشند قعا برای مطلع بودن دیدن آرا رو دیدن از شد که از نیمه های قرم اول ادعا کردن خود رسولن چون روایات زیاد شد یواشه هاش به فکر تنقیه روایات افتادن یعنی دیدن خب خیلی حدیثه و معانست پیدا کرد هرچی دورتر شدن احتیاج پیدا کردن که میاری رو یک میزان رو پیدا بکنن که رو بشناسن کلمات رو تشریف سدن و از شد که اینها معتقدن حدود سالهای سال 50 دیگه این کار شروع شد و طبعا اولین نوشه رسمی هم که اهل سنت دارن همین سال سال پنجاه تو اونجا ایشان دست به مسائل رجالی بین معنا نزده اما روایات مورد اعتماد رو برده اون کتاب موطع مالکی اصطلاحا اولین کتابی که فعلا موجود است و درش روایات او رو برده موطع مالکی که تقریبا مؤلفش 90 سال عمل کرده 80 تا 90 سال قبل از بخاری وفاتش لكن کتاب بخاری قد روایات ایشون توش فتابا هم داره فتابای علمای مدینه هم داره اما روایاتی رو که عورده صحیحه مراسی هم داره اما روایاتی رو که عورده معتبر میگونن حالا بعضش مثل بعضیاتی بخاری قابل رو شد اما معتبر بوده <تصح> <تصح> که تبدیدن اولین این کتابه از شد که همین سالهای حدود سال و پنجاه هم مثل شعبه شروع کردم به تفتیش از موارد و از شد که در کتاب مسر ساله شافی من اصر کردم اداره همه رو مدارکش موجوده این طور نیست که مخفی باشه خب در این کتاب سعی میکنه بحث حجیت خبر رو مفرغ بکنه و گفته شده که ایشان اولین شخصی است که مدعی شده خبر مرسل حجیت نیست می گفتن تا قبل از این علما تا قبل از سال 20 تقریباً به معنا این نسخه ای از کتاب رساله از ادعا شده سال 1305 سال 1404 سال شده فکر نمیکنم درست باشه فکر نمیکنم اون که نسخه ریزی تاثیر بشه فکر نمی درست باشه. این کتاب در این حدود یعنی اواخر قرن دوم تقریبا در زمان ازلرزان باشه شده و مواقع رو مثل خبر مرسل رو به تفصیل بررسی کرده این توضیحاتو هات عرض کرانا کردی و ظاهرا تقریبا میشه بود از این سنوات یواشهاش تحریف حدیث صحیح و تعبود به حدیث صحیح روشن میشه به خاطر تمسک باعی نبر هست شد همین اخیرا ظاهرا از سال 25 هم رسما دیگه در تعریف صحیح قید کردن که شاز نباشه معلول نباشه که از قرنهای 4 این رسمن در کتب اهل سنت الایمنه آقا تعریف رسمی حدیث صحیح شد که عدل ضابط از عدل ضابط اله منتهی الاسلام من غیر شذوذ و لا علته این تعریف صحیح پیش اهل سنت دیگه الان توی کتب اهل سنت جزء مسلمات گرفته شده و طور این تصور اینا این جور حدیثی رو صحیح می و خود جد شد این بحث از قرن دوم و سوم که این بحث شروع شد خب خواهی نخواهی این بحث به شیعه هم رسید تا اونجایی که الان معلومات ما به قول محاقت می اولین کتاب رجالی از ما اینطور که اسم مرده شده الان فعلا از اون کتاب حالا یک چیز مختصر یک شده باشه. آسایی در دست نداریم کتاب و عبدالله ابن جبل هست. اولین کسی که نویشته. سال 224 و وفات ایشونه. ما قبل از ایشان نداریم. از قبل از 224 که کسی که بهش کتاب را ایجال نسبت داده شده باشه. که دو کتاب هست مردم ماش بزرگ اصم بردن. بگه اینا اشتباه اینا, اینا کتاب را اونی که کتاب رجال رسمن بود حسود داده شده این حدود سالهای 2780 هم ابن فضال پسر کتابی در که قسمتهایش به صورت کلمات مرحوم ایاشی ازشون نقل میکنه این به ما رسیده یعنی قدیمترین نوشتاری که ما الان در رجال به ما بین مابین ابن فضال پسر و این کتابی سینام رجال برگی البته رجال برگی طبقاته رجال به فضا توصیه و تضعیح هم داره اینا قدیم این ترین که تاروایی هستن که به ما رسیدن در رجال و الان در خیال ما هست البته احل سنت در این قسمت هر از ما قدیم کرده هم خیلی بیشتر نبشتار دارن نه اینکه چندن بحثتر این قسمت بود که با انتشار این مطلب که حضر کردن این مطلب در میان احل سنت اینقدر بالا رفت تا کسانی این جور حدیثی و ادله قرآن قرار دادن اسم گرگی ابن حض مندرسی در کتاب علی احکامش در بحث حجیث خبر ایشون اینه که نانه نظر نظر شامل به واسه هم میشه تصریف میکنه ما حسره انه سره انه نبی این مزدام نانه نه نظر از نظر, نظر از صحت بگیریم از حجیت بگیریم تا این درجه سوال این بود که آیا این مطلب پیش علمای شیعه قبول افتاد وقتی حجیت خبر مورد جواب شدیم چنین مطلبی رو علمای شیعه قبول بکنن که صحیح عبارت از این است یا مثلا این حدل قرآن است این جزء نه نه نزده نزده شده نه چین چیزی نشد این تمام بحث اینه و از همین بعدها حقیقت بست در این شد که الان ما مطرح میکنیم آیا اصولاً حالا با قطع نظر از اون آیه نو آیا رو جهات مختلف آیا شیعه خودمای شیعه قائل به هجیت تعبدی خبر شدند یا نه چون در کلمات هر طبع تحکیل محاسم ما مطلب واضح نشده ما این رو توضیحات کافی از کنم مراد از هجیت تعبدی یعنی چی؟ اولین توضیح بکیم تصوری موضوع بشیم کراران عرض کردیم بجیه تعبودی یعنی یک معیاری گفته بشه و شاره ما رو متعبد بکنه هر خبری دارای این معیارا حجه دید بگه میخواد مفید علم باشه نباشه مفید حسوب و آتمینان باشه ده باشه بگی یک معیار طبقی این معیار بدین چون رو این بیشه حجه تعبودی اسمش ما کشم حجه تعبودی اهل سنت گفتن عدل زابط بعدم اضافه کردن من غیر شوززن ملائله این رو حجت تعبدی می دونن. از ارز کردیم من منبار مثال بعدها علامه در برن هشتون درشیه تفسیر کرد عدل امامی انمثلی الى آخر سنت توش من غیر علت ملائله این شد سهیل پس زابط پیدا کرد از کردیم مرمومه های خویی می خبر سره کار به عدی نبرن تا آخر سنت ثقات باشه معیار در حجیت و سفات راوی به این معنا گرفتن این می شه حجیت تر از کردیم مثلا اخباری ها من هم سا و سایه تصریح می هر خبری که در یکی از کتب مشهور باشه حجته این می شه معیار طبعاً چنین مطلبی احتیاج به اثبات داره خب اهل سنت بیشتر باید نبت بعد همون قید اضافه کردن حلا کلامه اهل شیعه امونایی که رفتن به این قول به آقای نبت هم کرد آقای خویی هم به سیره و و شاره سیره و اغلا را کرد راه ها اخباری ها هم به خاطر بعضی از بایاد کرد امام سوال میکنه روایاتی هست که از کتابی هست این ها از خواب ما دفنش کردن در رو امام امامی حدس حد صوبه ها فیرنا کتاب ها مشروع بوده از خوابش حال... احتیاجی به سند و اینها نداره همین که کتاب مشروع بود انتصابش به صاحبش وازه اون میتونی نه بود, بود. پس برای برای این سوال اصلی این بود که آیا شیعه قائل به حجی تعبودی شد انصافاً ارز کردیم این که منکره و جیت دارم خیلی و ما یه توضیحی رو سابقاً ارزمی کنی کسی تا را تربح بداده کرده بازم به همون نحوه اکمالشته حالا توضیح کافی ندادیم احتمال دادیم همچنان که احل نه از اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم رو آوردن به تصیح خبر به دهاد سند به اسمش باشد صحیح احتمال داریم که اصحاب ما هم همچی کاری بکردن لکن به جایی که به اصطلاح روی راوی حساب بکنن روی کتاب حساب کردن لذا آمدن یک مقدار از نوشتارهای اصحاب رو گفتن حالا اصلا این است که ما داریم که نکنه شواهد ما ها این این استلاح اص از حدود سالا یه بیسته این شباده ما توضیحاتشه سابقایم اشاره کردیم شواهد حاکیست که تصمیه اصل از صاحب کتاب نبوده مثلا حریص کتاب و صلاح داشته این اصحاب بودن که برزن کتاب و صلاح حریص کتاب و صلاح حریص اصلون این توصیف و در اصل متعفید روچنگ شد بعید ندرستیم که همچنان که اهل سنت رجوع کردند به روایات به لحاظ حال راوی اسحاب به عده از کتب مراجعه کرده این رو احتمال داریم البته احتمال هم هست که این عامه اصحاب نبوده خصوص واقفیه اول این کارو کردن یه توضیحاتی که فعلا باز هم با مجموعه شواهد این کنار نمیاد حالا الان توضیح داده میشه بحثی که الان بعد از این مقدمات گفته شد اینه آیا در میان قدمايه اصحاب ما حالا عشق توصیبی هم حجیت تعبودی خبر مطرح بوده و قائل داشتن یا نه؟ حالا هر محیاری مخواد باشه قرض شد که تا اونجایی که بنده مراجعه کردم و دیدم خیلی اصلا قائل به حجیت تعبودی خبر نداریم، به هیچ قولی خب حالا من بعض از شواردش میم تا روشن بشه بس خب ممکنه شما بفرمایید خود صدوق دیریزم خوندی، در اول کتاب منلای احضار میگه من و جمیع مافی مستخرج رو میند کتاب المشروعه خود ایشان اینه حلتی علی حلی محول و علیه هل پس ایشون قاعد برژه است. مئیار کتاب میشه این سؤال ایشون گفته بودی در مقدمه پس چرا ما میگیم اینا حجی تعبدی حتی صدور هم قاعد برژه تعبدیست جواب مراد ما از حجید تعبدی این است که اگر محیار بود این به دنبال محیار بره تا لوازمش و معارضاتش همه هم رو حساب بکنه ما الان به رضوع داریم می‌بینیم این جای بحث نیست جای تعبد نیست که مرموم صدوق با اینکه که فرمدرد جمعه امافیم در, امافی، در کتب مشهوره دو نکته در کلماتیشون با مراجعه ما واضح شده یک خیلی از روایات ده ها روایات در کتب مشهوری که خودی ایشان اینجا اسمشو برده وجود داشته که شیخ صد اونا را اصلا نه برده ده ها روایات مثلا این کتاب کتاب رحمه سعددن عبدالله را افس برده ایم. بس نداری تو به نظام اولین کتاب ما هست نگاه کنیم دیباچه صدو برو توی کامپیوتر. به اول است کتاب رحمه سعددن عبدالله و جمعی آمافی مستقر از اون مشهور کتاب المشورد به اول کتاب رحمه صدوی الان ما در تحضیب شیخ توسی ده ها حدیث از کتاب رحمه صدر رحمه میشیم که صدور اصلا نهارده بلکه باید گفت صده حدیث کلن نهارده تو همین بحث اجزاء قسل از حضور مردم شیخ توسی پنج رو باید لاقل از صدر رحمه نهارده نهارده نهارده ایه حضور این اف صدوق یکی از اینا رو مرو. فراوان. علما ما شاء الله یکی رو دو تا و سه تا و چهار تا اینا در شاء الله در مشهوری که خود ایشون اسم برده خود من صدوق اسم برده در مقدم کتاب ما الان روایات بسیار فراوانی داریم البته ایشون نگونده خیلی از اونها رو هم قدیمی هم نگونده امون منفردن شیخ رو برده همین معلومی که ایام همه از دو مثلا برای محرم ما یه روایت واحده که تزلیل اشکال داره اونم صدر نبدالله نفر کرد اونم شیخ توسی رو برده کسی هم پسو نه داده دقیقه مزنی الا ماشاءالله ما, ما روایت شازه از صدر الله رحمه الله داریم که مرهوم شیخ توسی رو و صدر نه برده الا غیر زاله که از این کتاب نوازار حکمه اینقدر روایت داریم که کلینی یا شیخ توصی آورده صدوق نهارده از کتاب نوازار حکمه اونجاهایی که مربوط به اموار ساداییست ده ها روایت داریم که شیخ توصی ارده و کلینی و شیخ صدوق نهارده از کتاب نوازار حکمه یه مخواه بگیرمه شخص درسته که گذور یعنی صحبت یکی و دوتا و و نیست اول هم کتاب رحمه و جمعی و مافی صفحه دو یا سه دیباجه صدوق به نظام اول کتاب رحمه پس یک نکه از همین کتبی که مرمون صدوق اسم برده و قطع در اختیار صدوق بوده ما فعلا صده ها حدیث داریم که ایشون نه بردن بر کتاب رحمه از خود گذار حسین سعید صده ها ده الان در آن در داریم که شیش صده کلر اونها رو در هیچ کتابش رو نگوید حالا, حالا این واضح یعنی احتیاج به صحبت مندازه این کاملا صد درصد واضح داره باشند و از طرف دیگه با مراجعی که ما داریم این چون نوشته نشده و بزرگانم نگفتن این ما روایات بسیار زیادی در صدور پیدا کردیم که ظاهرا از کتب ما نیست از خوشب و سنت مثل مثلا ادرعال حدود مصد به شبهات این ما نداریم مثلا کلا سمنی ها دارن ادرعو دقت بکنیم ادرعو در از تدرعال حدود به شبهات اون حدیثی که از پیغمبر نقش شده که بحث طولانی کی از داره سالارم متعصد در جه خودش که یکی از رضاعف حاکم دقت، تا جایی که میتونه حاکم خودش ایجاد شبهه بکنه که حد رو جاری نکنه. ادره بر حدود. نه تودره بر حدود. تودره بر حدودش با قاعدت روایت هست. خب اصلا با قاعدت من هر که موضوعش احراز نشه. مثلا احکام و بار نمیشه. نه ادره بر حدود. تا جایی که میتوانن حکام کاری بکنن که حدود جاری نشه. یا محن دیگری داره اجرا ال حدود علی المسلمین مختطهاتون اینم داری صدور این اجرا حدود به شما تو دارد که قال النبی او رسول الله ادا اصلا ما کلا نداده زیاده یکی دوستان من فکر میکنم خیلی جایی که صدور با من روبی آورده نظرش به این بوده این تشخیص از من به کسی نسبت نمیدم که روایتی که مثلا روی احمد صادق و یا روی رسول الله اینجور روایات روایاتی دیدن که ایشون به اونها اعتباد داشته اعتماد داشته و حجت می اما در کتب مشهوره نبوده <تصفيق> یعنی به اصطلاح آیون با اون شرکی که در اول کتاب بوده نمی ساخته در کتب مشهوره نبوده تلقیه به مشاهده ها هم تلقیه به قبول نکردن این اعتباد منه که اینجور جور و سدون به عنوان رویه می دار. در کتاب مشهور نبوده و لکن خود ایشان حجت میدونست روز زبابه که داشته خود ایشان این مطلب رو حجت میدونست پس منابراین ما از آن با وجود این دوتا قرینه کاملا برای ما واضحه که مرموم شکل صدو مرادش از این عبارت اینه مسادر من از کتاب مشهوره است. اما نه این که هرچی در کتاب مشهوره هست چون کتاب مشهوره است. اما همین مطلب در کتاب وسایل جور دیگری است یعنی وسایل سال وسایل هر چی در کتب مشهور است میدهد این میشه وجه تعبدی ثا وسایل شرارن عسکری ما در یک بابی احادیث داریم که مثلا کلینی به یک احادیث اعتماد کرده به یک احادیث نکرده صنو بغیشوا به تایفه دیگری اعتماد کرده به این تایفه درخ میفهمی یعنی صنو با کلینی در اعتمادشون، در روایات با هم فرق میکنن. یک تایدور کلینی اعتماد که یک تایدور سر بود. اما ساحب و ساحب کنید. چون مبنای صاحب و اینه که هر تبری در کتب مشهور باشه و حجته صاحب آه. و سال اونا هر رو هر دو آورده. هم کلینی رو آورده، هم صدور رو آورده. پس مراد ما از این تابودی روشن شد، یک معیار رو بگه و دنبال این معیار بره تا آخر این رو ما در قدم نمی‌بینیم، این خلاصه بحث نه در قدم ها. تا زمان علامه نمیبینیم حتی مرحوم فلسل محفظ کرده صلی اللہ بین ما در قدم ها همچیزی نمیبینیم بله فی ما بعد مثلا در اخباری ها میبینیم همین مطلبی رو که شیخ صدو بفته جمعی آمافی مستخرین در کتابی مشهوره این مبنای صاحب وسائله ولذا صاحب وسائل و این رب کتاب وساائل امتیازش اینه ایشون نهی این که فرصمان کتاب اوال رو ندیده بود در اون زمان ایشان کتاب اول لعالیه شاید مثلا نزیگی سال مثلا سال 80 سال, سال, سال, سال در شهست سال هشته سال اما ایشان حجیت را ایش خواهد از کنم مرموم وسائل در این خاتمهی ای که داره که الان در چاپ مرموم ربانی جلد بیسته یه منقلی از 19 بیسته. و در این چاپ جلد, جلد سیه میگه که من اینها رو از خطور مشروع استخراج کردم و یک هاشیه داره که در همین چاپ جلیل آمد در چاپ ربانی, ربانی این هاشیه هاشیه خود صاحب سائله. از که در جلد سی وسائل نرا کنیم ایشون حدود دوازده کتاب رو اسم میبره که میگم هم بینا اعتماد نکردم یکی جم هم همون اوال لالی یکی جم به نظرم نصف شریعت به نظر میگه هم فقور رزاست اسم میبره کتوبی می رو کشونه ایشون در حقیقت کتاب وسائل نیامده هرچه حدیث باشه احادیث کتب مشکوره رو که حجت میدونه امرده این مبنای صاحب وسائه دقیق من چی بخواب احسن این مبنای صاحب, صاحب در میان قدما هست ما نیست این مبنا که هر خبری که در کتاب مشکور باشه و حجه این در قدما نیست با این که اول صدوق این عبارت آمده اما به عنوان تعبد نیست یا مثلا مبنا خوبی قدس الله نفسه که هرچی را به سقه باشه نیست در میان قدما نیست یا این مبنا چه پر این عدل باشه که ارز کرده مرحوم علامه و مثل مدارک کاملا منتظمه در میان اصحابه ما صاحب مدارک از این جهت شازه صاحب مدارک حتی به حدیث مبسل هم عمل نمیکنه به حدیث ابن فضال هم عمل نمی البته صاحب حدارش هم برای از اعتراض میکنه که بعضی جه ها عمل کرده راسته لیکن خیلی محدوده در این هجل از ستابی که چاپ جهلی کدام مدارک هجل ده شاید برزم مثلا دو مورد سه مورد یا چهار مورد از دست ایشان وقت حدیث دردت و حدیث موسطق رو آورده و الله کاملا مغیده به حدیث صحیح عمل بکنی اونم به معنای مایرویه الادل الامامی ان الادل الامامی الاخرستن هم متصل هم دقیق این مبنای سال ماله مداره حرف برزه اینه که این مبنامیان و خودمهای اصحاب ما اصلا وجود نداره مبنای مثل مرمون استاد که به مجرده وساقت کافی باشه وجود نداره مبنای صاحب وسائل که حدیثی که در کتاب مشهور از حجته این وجود نداره کنن اینا نبودن و لذا تا اینجا روشن شد اگر مرا از نفی حجه هر هرکایی که گفته شده اصلاس نداره. اگر مراد از نفی حجیت خبر این معناست خوب دقت رو دارید. این معنا که قدم های اصحاب ما یا سنیه ها نسبت دادن که روافظ قائل به حجید خبر نیستن چون خود سنیه ها قائل به حجید خبر تحبودی هستند، حجید تحبودی خبر هستند، حبوت ها اگر مراد این مبنی باشه راست هم با سید هم بایشانه نیم باید ادعای اشماع ب ما حتی خود شیخ توسی هم نداریم چه چون خیلی جه ها شیخ به خبری اشکال میکنه بعد جامگه حالا خبر رو واحد لا یقمال و بعد ده ها سنگه ها مورد به خبر رو مواهد عمل بگیم بعد جامگه خبر مرسل است و بهش عمل نمی ما نه نبی عمر جای دیگه بهش عمل بگیم بعد جامگه راوی خبر احمد بن اعلال لا یقمالو به ما سر یعنی دوبه در اون جایی که به تعبیر خودش انفراد نداره عمل می‌کنه برای جو ساز هم داره عمل میکنه این به اصطلاح ما بگیم که اینها یک مبنای واحدی داشته مثلا یک شیخ طوسی مبنای شوجه خبر سره است شیخ طوسی مبنای شوجه خبر انده شیخ طوسی مبنای شوجه خبر است در کتاب مش هیچ از این موارد نمی‌شه شیخ چون تمام اینها مرده نظر در کتابه... کتاب کتب شیخ قدس الله مرسده. پس اگر مراد از عدم و جیهت خبر این معناس راست است. قطعا همینطوره از کردم مگر پس که مثل فزم شازان ممکنه چون بوده با موانی عهد سنن و اون دو تا مطلب که ایشون از محمد بن سلام نهار کرده بذاریم چرا؟ ممکن حالا مثلا پس مثلا احمد عشقی خب مرد بسیار بزرگ با ایشون حتی میگن چند نفر از اون بخاطره کذب به خاطر قلوب و اینها از اون بیرون کرده که احمد برریسه که سهل, سهل ابن سیاده خب ما یکی از راه هایی که الان به میرات های محمد بن سان ها داریم همین با محمد بن سان رو فرز ابن سان داریشون فرز اونو خط قلوب ایشان بودنش که کاملا واضحه بلا کشانشون دوزه ارکان خط قلوب یک مقدار بسیار زیادی از میراساییشان در قوم در کتاب کافی از هم غیره توسط همین احمد عشقی محارسیده اصلا بگیم احمد عشقی نسبت به غلافت حساسیت داره خب ایشون حساسیت داره این همه رو بارد محمدون سلام چون نرفه بگیم تیجوز ارکان اون خطه نه اینجا فرد حادید ارسان هم چند این قادر فرام بشنه برمایی یکی از اساسی ترین ارکان در تولید افکار خطقل و مفضلت بن و یکی از مهم ارکان در نشر افکار خطقل محمد بن سلام این دو تا رو با هم دیگه فراموش نکنید برای شخصی که پیش ما توریید کننده افکارها بعضی آثارم بهش نسبت داده شده درستی نیست مهمترین شخصی که آثار خطقل رو در مرحله تولید داره مفضلت بن و مهمترین شخصی که ناشر افکار خط قلوب و مدرسه قلوبه از همه شون بالاتر محمد مستنان سرم زیاد هست اما بدا اشکال محمده از همه شون بالاتر و یه مقدار بسیار زیادی از آثار همین محمده مستنان همه توسط احمد عشری ببارسیده همون احمد عشری که سهده زیاده به خاطر کس و قلوب از خون بیرون کرد خیلی قرآن تحجیب آفرده همون آواها آثار محمد بن از کوفه به عمر البته با توضیح دادیم ایشان ظاهرا تنقید کرده چون چون کوفه رفته و دیده محمد بن از کتاب کتابها نه می‌دونن بررسی کرده دید هر بو خوب درس نکرده اونجا دردی عمره کار بلد نگرد ایشون دقت می‌کنه و لذا من کراراً عرض کردم ما در کتاب کلینی یک مقدار رو از آثار خط قلب رو می‌بینیم که بسا تنقیه شده ماهدتره فقط نمیدونستی خیال میکنیم این کار کلینی حالا احتمالی که من میدم چند احتمالی که من میدم کلینی در حقیقت احتمالش بر احمد اشعریه. اولین کسی که این کار کرده احمد اشعریه نه کلینی کلینی با یک واسه بایشان فاصله داره پس فرناورد این دقیق کنیم بگیر مثلا این آقا هدفش این بوده مثلا محمد رو ابن قزایری که خیلی سنگین ما قبول نکردیم انصافا حرف ابن قزایری و اون راجبی محمد انسان یه یزع اصلا بزا این، الان بزا داشت پیش اون صادق انسان، انصافا تو نظر ابن قزایری کتاب مال شامش ما ورد احادیس رو برای محمد بن انسان قبول نکردیم. همه محمد انسان با این اوضاع این احمد اشعری آثارشان آثار ایشون رو به قم خیلی عجیبه بقولیم واقعا چیز تجربه کردیم. این معناش اینه، بخاطر اینو بگم قدم اصحاب مبنای واحد و محیار واحد نداشتن. روشن شد. بگیم محیارشون خط حلوب به کنار بزنم. بگیم محیارشون سقل باشیم. بگیم محیارشون عدل باشه. این محیار ندارن. پس اگر مراد توضیح هم از عدم هجید و پیش شیعه این معناست واقعا همینطوره. نه ایت تحبادن مخونیم. انصافا همینطوره. ما فعلا نمیتونیم بشناسیم. پس خدمتی اینقدر مروون نجاشید میگه این آقا ضعیف ارزش نه نمی‌کنه الا به واسطه بنیا بنو خب قطعاً پیش مبنا خود این مطلب قبول نیست میگه والله واسطه باشم ضعیف ضعیفه دیگه از این ثقه ند خود قطعاً این مبنا پیش صاحب مدارق قابل قبول نیست چون میگه تمام سند باد اقل امامی بچرد واسه میگه تمام سند وقتی تضیف شده قطعاً خب این که ترویج صناعت اینطوری دیگه بقیه فلس علی ما فرادات فعلله پس اگر مراد سید مرتزا و این دعوایی که مطرح شده اینه انصافاً حق با این آیم نیست که میگن شیعه قائل به حجیت خبر نیست اما اگر مراد چیز دیگه نیست و اون اینکه که علمای شیعه با قرائم به خبر خبر به حجیت میگانستن با مجموعه قرائم و مراده از حجیت خبر یعنی خبر به لفظه به عنوان یک دلیل لغزی این رو حجت بزنن در مقابل سریل مرتضا که خبر رو کلن حجت نمی‌دونه، برتر از هم قرائن باشه قرائن روی حکم میبره نه روی خبر قرائن روی رو مضمون میبره نه روی خبر مثلا خبر میگه کنان چیز حرامه این بیاد دنبال قرائن برای حرمته نه برای خبر اگر مراد سیر مورتزا اینه که واقعا هم سیر مورتزا در همه انتصار همین کاره میکنه ما کنون ت... توضیح دارید سیر مورتزا که اینگه خبر هدجه نیست مرادش اینه که حتی اگر بلا سیر که اینگه خبر هدجه نیست که احکام رو که معطل نمی‌کنه که در احکام مراجع میکنه با مجموعه شباهه که مهمترین شاهد پیش ایشان تلقیه به قبول بین اصحابه شبیه این رو از محقق خوندیم محقق فراموزین که عمل به ازهاب دلت علیه و قرائن بعد دیگه اگر خبر هم بود خبر معایده ببینید یعنی حجت اون عمل و قرائنه این مطلب در پیش سید مردزا هست اگر بکنید سید مردزا مرادش اینه که ازهاب ما مثل من هم خبر رو حجت نمیدونم با قرائن اگر حجت اون حکمه اگر مراد سید مرزا از دعوای اجماعین کار به شیخ نداره قطعاً کلامیشان قابل قبول نیست. انصافاً کلام سید مرزا قابل قبول نیست. قطعاً علمای بزرگ ما چه مردادی ها، امثال فسن کلیدی، چون کلیدی در قوم نویشت تفکرش مردادی است. و چه امثال شیخ موفی، چه امثال شیخ توصی قطعاً اینها به متون اخبار عمل می کردن. و قواعد علمي به متن مثلا اگه مفهوم شر داشت روی مفهوم شر رو در جز داره اینه نکته اینه عموم داشت اطلاق داشت به عموم و اطلاقش عمل می‌کرد و اما مکتب قرو که قطعی این کار رو می‌کردن بلکه قراران از کردیم شیخ توصی در مقدمه مبسوط میگه اصحاب ما فقه تفریعی ندارند بلکه پتاواشون عین نصوصه میگه حتی احتراز میکنن که لحظه نسوه عوض نکنند مثلا توی 100 مورد که ما در با وجود داریم یکم داره در روایت حالا یه مورد گفت تو یلزمو اینقدر اینا مغایر بوده که تو اون مورد متن روایت میگود یلزمو میگویند نمیگویند یلزم شیخ <تصفح> در مبسوط این تولی اول مبسوط میگه اینقدر مقید به متون روایتا حتی عبارت رو تحییر و اینجا هم با شیخ توسی است یعنی اصحاب ما اینقدر و لظام فقه تفریقی این اصحاب ما جا نیفتاد چون فقه تفریقی باید از خارج بشه. لظام شیخ به فکر مفتاد محسوس بریستی که فقه است میگه از راستان میگه شیخ و بعدم مثلا این فصل سال کمتر از شیخ از سال به قبل از شیخ طوسی این کار شروع شد. خب این فقه شیعه رو چیزی که محدود می‌کنه به فقاه منصوص، مقید بشه به همون نصوص و از عین نصوص هم خارج نشه. حتی گفته یع، گفته یلمتیاشو. گفته اريدو داره، اینا گفته آقا ده امام. یلزن یلزن. یلزن رو هم عوض نکرده. دقت و انصافا این مطلب ما تعود به كلام نداریم هر آن خود من اعتقادم اینه که اگر صدوق اون چی در این فقیق عورده قطعا و جزمن این روایت و قطعا و جزمن روایت داره اگر جایی روایت در متن اشکال داشته اونجا را صورت روایت در فتفا کرده فقط اینکه اون یک کلبه را عوض بکنه خیلی پوغلاده به انصافا محیر الوحول کار برموم صدوق در فقیق و در محنه واقعا در اینجا محیر ال بسی اگه یه روایت بوده سه سعت بوده یه دوتا کلمه شرام بوده اعتقادم تمام اون روایت رو آورده اونجایی هم که قراره درست کرده اما روایت قرار نده فرق و قراره بوده. اینقدر دقیق این من واقعا ما اعتقادمونی که یک کلمه از کلمات این فقیر بدون استناد به روایت نیست اینقدر این فوقلاده از این فقیر بزرگوه قدس الله وسلم و پس این مطلب که اگر مراد سیر منتظر رضوان الله تعالی علیه تا اینجا بیم که اصحاب عمل به خبر نمی به این معنا که با خبر معامله دلیل لبی میکردن و دنبال حق بودن و کمانی سیر منتظر همینطوره خود سیر منتظر همینطوره ابن اینیس هم همینطوره ابن زهر هم همینطوره اگر مراد مرحوم سید و از عدم و حجیبه این معناست این مطلبی که ایشون خواهد من بطعا دوست است یعنی این قطعی است که ما بزرگان اصحاب ما به قرآن عمل میکرد ارز قرار قرآنی که موجود بود به طور طبیعی این بود قرآن و غلایی که مثلا شواهد تاریخی شواهد این و با مطلب تایید بکنه قرآن دینی که بیشتر می کن به موافقت کتاب و سنت و قرآن مذهب که بیشتر می کن مثلا در به ترقی مشایخ یا ترقی اصحاب یا اشتحار بین اصحاب سه جور قرآنه بله بهدادی های ما به قرآن اقلائی و به قرآن دینی بیشتر نظر داشتن اومیه های ما به قرآن مذهب بیشتر نظر داشتن به مثلا در قوم تلقیه مشایف کتاب مشهور بودن دقیق کنیم راسته یعنی اصحاب ما این بوده که به روایات عمل میکردن روایت و برنان در لحظی قبول میکردن لکن نگاه که میکنیم بین قوم و بغداد فرم هست اصافه تازه بین قوم و بغداد هم باز با تفاوتی مثلا در بغداد خود مرگون یونسی نداره مثلا بیشتر قر... قراره دینی رو موافقت با کتاب و سنت اینا همون ابن عبی و عمه که در همون زمانه بیشتر قراره مذهب و نقلی چون ایفون فوقعاده مطلع و روایات اصحاب و کتاب و اصحاب و کتاب ها رو میشترسه رواط رو میشترسه نقاد مقارنه میکنه میبینید این قراره معیلی بیشتر به هم خود برداد هم دو جور داریم. این ها دیگه تعبودی نیست با مراجعه ما به کلماتون ها کاملا واضحه. در قوم قرآن مذهب که مهمترینش اشتهار کتوم و بعد تلقی مشایق. این از همش مهمتر بود. اینکه که قبول بکنن و یا کتوم مشروع باشه. این قدیل در قوم خیلی قوی بود. در مردان هم بود اما در قوم قوت این مبنات خیلی بیشتره کاملا محسوسه و یا خبر رو به عنوان خبر حجت می‌درسن بله سید مرتضی خبر رو حجت نمی‌درسن پس شما اگر مراد از دعوای اجماع اینه اجماع سید مرتضی اون معنای اول از هر با ایشان اگر معنای ایشان اینه که اصحاب کلا به لفظ خبر اعتقاد نداشتن و مرعون خبر با حکم نگاه می‌کردن این مطلب ایشان قابل اعتماد نیست و درست نیست با واقعیت فقه و حدیث شیعه نمی‌سازه. بقیه کلامی شده حدا و صلی اللہ علیه و محمده و آدم طاقه